شب هشتم در اول مجلس جناب واعز بحث را شروع کردن میخواهم به عنوان اولین مطلب سؤالی رو از شما آقیون بپرسم همه میدونیم که عقیده اهل سنت این هست که گوینده لا اله اللہ و محمد رسول الله مسلمان و مؤمن هست. سوال این هست که با وجود اینکه ما شیعیان قائل به شهادت این هستیم چرا شما سنی ها ما رو کافر، مشرک و رافزی می خانید؟ مگر شما نمی پیامبر فرموده اگر به هر یک از صحابه من اقتدا کنید هدایت می شوید.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 هر که به آن متمسک شود نجات یابد و هر که از آن تخلف کند حلات می شود. مسئله شما مسئله ستارگان است که تا روز قیامت هرگاه ای پنهان شود ستارهای دیگر طلو می کند. همچنین از رسول خدا نقل شده هیچگاه به اطرات من چیزی نیاموزید چون آنها از شما عالم ترند. جالب و عجیب این است که ابن هجر مکی متاسب می گوید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 از خود حضرت حالی قضاوت کنید، چرا و به چه دلیل ما امامان با عظمت خودمان را کنار بگذاریم و از امامان بینامونشان شما طبعیت کنیم؟ بر اساس چه ملاک عقلی با وجود این همه مستندات مسلم و عقلی پیروی از علی را کنار بگذاریم و پیرو معاویه و ابوهنیفه حنیفه مگر ملاک شما برای انحصار امامت، در اعمه اربعه چیست؟ ملاک ما، مانند ملاک شما برای انحصار امامت در دوازده امام است. پس در ابتدا من ملاک های انحصار دی ائمه را به دوازده نفر میگویم و سپس منتظر شنیدن دلایل شما خواهم بود. در صحیح بخاری از سه طریق، در صحیح مسلم از نه طریق، در سنن ابی داود از سه طریق،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 مدتی است که آقایان اهل تسنن مرا تحت فشار قرار دادند که این مطلب را مطرح کنم و مورد بحث قرار دهیم چون امر می‌فرمایید مسئله نیست اولا اینکه فرمودید و لعن صحابه و بعضی از همسران رسول خدا موجب کفره است حرفی بی پایه و بیاساس است و هیچ دلیلی جز تبخّم و تعصب جاهلانه نمی توان برای آن بنا کرد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 تمام علما و مورخین خودتان نوشتهند نوشتند که آیشه همواره به خلیفه عثمان دشمنام می‌داد و می‌گفت این پیر خرفت را بکشید چرا که او کافر شد و نیز در تاریخ ثبت است که معاویه حضرت علی علیه السلام را علناً سب و لعن می‌کرد حال بفرمایید کتاب شرح عقاید نصفی ملا عمر تفتازانی را قبول دارید یا خیر کتاب <تصیح> تفتازانی کتاب مقبولی است او در کتابش نوشته بعضی از دانشمندان بیش از اندازه و اصحاب پیامبر خوشگمان بودند. به طوری که اعمال بد ایشان را نادیده گرفتند و تا قائل به مسئولیت صحابه رسول خدا از گمراهی و فسخ شدند. در صورتی که این چونین نبوده، بهترین دلیل بر این مدعا جنگ است که بین ایشان رخ داده. تاریخ گواه خوبی بر حسادت جاه طلبی و اعمال زشت و ناپسند بعضی از اصحاب است، سؤال این است آیا گفتههای تفتازانی باعث کفر اوست یا خیر بهترین دلیل بر اینکه سب و دشنام به صحابه باعث کفر نمیشود، این است که در زمان حیات صحابه بعضی از آنها به برخی دیگر دشنام می‌دادند و با این حال کافر به شمار نمی‌آمدند اگر دشنام دادن به صحابه باعث کفر است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 در شرح نهج البلاغه مینویسد ابوبکر در مسجد در مقام انتقاد از علی گفت جز این نیست که علی مانند روباهی است که شاهدش دم اوست ماجراجو و فتنه‌گر است مردم را به فساد می کشاند و از افراد ضعیف کمک می گیرد آیا حرفی برای گفتن دارید یعنی میفرمایید دشنام دادن به صحابه هیچ اشکالی ندارد هرگز من چنین چیزی را نگفتم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 سال هشتم هجری دی از بزرگان صحابه مجلس اونسی داشتند که در آن مجلس همگی شراب نوشیدند. این خبر جعلی است. نمونه دیگر نیاورید. اگر مجعول هم باشد جعلان بر عهده علمای خودتان است. آیا نام صاحب مجلس و میهمانان را هم در کتاب آوردند؟ بله. ابن حجر در الباری نوشته ابو تلهی انصاری مجلس شرابی تشکیل داد و ابو اشعاری را در کفار و کشتگان بدر سخت نام‌های مهمانان عبارتند از ابو بکر، امر، ابو عبیده جرا اوبایی ابن که، سهل بیزا ابو ایوب انصاری، ابو تله ابو دجانه، ابو شغوب و انسه بن مالک که در آن مجلس هجده ساله و ساقی مجلس بود به خدا قسم این خبر از ساختهای شیعیان است آه، آه. آید کفاره قسم بدهید این خبر را بخاری و مسلم و احمد ابن حنبل نقل کردند بگذریم یکی دیگر از اعمال زشت اصحاب نقض اهد بوده نقض اهد یکی از گناهان کبیره است و خداوند متعال افراد ناغذ پیمان را لعن فرموده اصحاب عهد را کرده اند. همان عهدی که رسول خدا به امر پربردگار در روز قدیر از آنها گرفت. تمام شیعه و اکثر سنی ها که پیامبر بزرگ اسلام در حجت الوداع در روز هجده زیدجه سال دهم ده هجرت در محلی به نام قدیر خم نزدیک به هفتاد هزار مسلمان را جمع کرد و خطبه بسیار طولانی برای آنها قرائت کرد. در این خطبه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 جالب اینجاست که ابو و عمر و عثمان و تله و زبیر جز اولین افرادی بودند که در این روز با خلیفه بلافصل رسول خدا علی بیعت کردند. چطور می شود باور کرد که چون امر مهمی اتفاق افتاده باشد و هیچیک از علمای بزرگ آن را نقل نکرده باشند؟ چه کسی گفته که این واقع را هیچیک از علما نقل نکرده؟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 یا سزاوار بود که چنین عهد و پیمان محکمی بعد از دو ماه زیر پا گذاشته شود و به خاطر هوا و هوس حق امام علی علیه السلام پایمال شود و آتش به در خانش برده شود و با شمشیر تهدید و با اکراه به بیعت با ابوبکر مجبور شود چرا به اصحاب رسول خدا توهین میکنید ابو حامد غزالی در کتاب آلمین می نویسد؟ قول حقان است که علی جانشین و خلیفه بلا فصل رسول خداست چون درستی قضیه غدیر خم واضح است هر اعتراضی بیهوده چه دلیلی بهتر از این است که عمر پس از تمام شدن سخنان پیامبر به علی لا الله وجهو تبریک گفت این نحوه تبریک گفتن نشانه تسلیم او در برابر خلافت علی بوده.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 مفهوم این حدیث می‌فهماند که امر مهمی در جریان بوده که این همه تاکید و تهدید در کلام پروردگار بیان شده. علاوه بر این، توجه به آیه سی سوره ماده که می‌فرماید: "اللهم اکمل تولکم دین کم بادم، توم عليكم نعمة الاسلام دینا"، روشن می‌کند که جریان مهمی در روز قدیل رخ داده و که شما می‌فرمایید نبوده.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 اما مسلما دلیلی بر باطل بودن مطلبی که عرض کردم نمیتواند باشد. مسئله نیست. گفتار سبت ابن جوزی را عرض میکنم تا شاید آن را به عنوان دلیل قبول کنید. او نویسد جمله الست اولا بالمؤمنین من انفسهم که در ابتدای کلام پیامبر آمده ثابت میکند که کلمه مولا در حدیث قدیر به معنای اولا تصرف است.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 آیا می‌دانید که من سزاوارتر به مؤمنان از خود آنها هستم؟ مردم گفتند: داری؟ پیامبر فرمود: هر که من مولای اویم، این علی مولای اوست. جالب اینجاست که حسان ابن ثابت نیز در زمینه جریان قدیر در حضور پیامبر اشعاری را سرود و مورد تشویق رسول خدا قرار گرفت. روایت شده که پیامبر پس از شنیدن اشعار او به وی فرمود: ای حسان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 و داد خود را طلب می کنیم تا تقاس ظلم هایی که در حق ما شده را در محضر رب متعال از شما بگیریم. چه ظلمی؟ بزرگترین ظلمی که به ما و بلکه به تمام بشریت شده قصب حق جده ما فاطمه زهراست. است. بسیار خوب. فرض کنید الان پای میز محاکمی الهی هستید. ثابت کنید که به فاطمه ظلم شده. تفاوتی که اینجا با محکمه عدل الهی دارد این است که در آنجا تعصب و کتمان حق راه ندارد. من اصلا اهل لجبازی و دشمنی نیستم. متاسب هم نیستم. در طول این مدتی که در محضر شما بوده و هستم، هر زمان که حرف حساب شنیدم ساکت ماندم. با اینکه می‌توانستم میتوانستم مقالطه و یا مجادله کنم. مطمئن باشید که من آن آدم شب اول نیستم، و امید دارم با ولایت آل پیامبر از دنیا بروم خداوند به شما خیر بسیار عطا کند استدعا دارم به عرائز من گوش دهید و به عنوان یک قاضی عادل حق را به صاحب آن بدهید بفرماید. برخی افراد نادان میگویند گویند چرا امریکه 1300 سال قبل رخ داده و طرحان موجب کدورت و اختلاف می شود را مطرح می کنید بر جواب می گوییم که اولاً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 پس از این مقدمه می سوالی سؤالی رو از محظرتان بپرسم. بفرمایید می بفرمایید. اگر پدری در زمان حیاتش ملکی را به فرزندش ببخشد، آیا این ملک پس از فوت پدر جزء ماترک میت به حساب می آید یا نه؟ مشخص است که آن ملک جزء ماترک نیست و مشمول قانون ارس نمی شد.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 سرتاپای این حدیث جعلی است جالب است شما به راحتی چون این حدیث معروفی را جعلی می خواهد. اگر اندکی دقیق شوید شما هم به جعلی بودن این حدیث پی میبرید. این حدیث میگوید ما انبیا عرض نمی به حالانکه آیات بسیاری در قرآن وجود دارد که راجع به عرض گذاشتن انبیا است قرآن کریم می و ورس سلیمان داوود. حضرت فاطمه زهرا در ای که با ابو بکر داشت این آیات را عنوان کرد و فرمود ای پسر عبیق و حافه. آیا در کتاب خدا نوشته شده که تو از پدرت ارث ببری و من از پدرم ارث نبرم؟ افتراع بزرگی به خدا می بندید. آیا عمدن کتاب خدا را کنار گذاشته و قرآن را پشت سر انداخته اید؟ مگر در قرآن مجید نیامده هرگاه یکی از شما را زمان مرگ فرارسید چنانچه دارای مطاع دنیاست برای پدر و مادر خویشانش به نهب شایسته وسیعت کند. شما بر اساس چه حکمی مرا از عرص محروم کردید؟ آیا خداوند شما را به آیهی مخصوص گردانیده و پدرم را از آن آیه اخراج کرده؟ آیا شما به و عام قرآن از پدرم محمد و پسر امویم علی داناترید؟ چون خلیفه و اطرافیانش در برابر بیانات مستدلان حضرت درمانده شدند، بنا را بر فخاشی و توهین گذاشته و هوچیگری را انداختند. حضرت فاطمه زهرا خطاب به ایشان فرمودند، امروز دل مرا شکستید و حق مرا زایه کردید. من در روز قیامت در محکمه عدل الهی حق خود را از شما خواهم گرفت. هیچ کس جارعت جسارت و به ودیعه پیامبر و رسول خدا را نداشته.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 پیشنهاد می کنم تاریخی خودتان را مطالعه کنید تا به درستی حرفهای من پی ببرید. مطلبی که خدمتتان عرض کردم بر اساس نوشته ابو بکر احمد ابن عبدالعزیز جوهری است. و این می پس از اتمام خطبه حضرت زهرا سلام الله علیه ها امیر المؤمنین روبه ابو کرد و فرمود چرا فاطمه را از میراث پدرش محروم کردی؟ حالانکه که در حیات پدرش در این ملک متصرف بوده.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 تو بر خلاف این حکم قطعی و مسلم از فاطمه که متصرف در ملکت شاهد طلب می آیا نمیدانی که قول فاطمه که یکی از اصحاب کسا و مشمول آیه تطهیر است عین حقیقت هست؟ آیا اگر دو نفر در حضور تو شهادت دهند که فاطمه مرتکب حرام شده چه می کنی؟ گفت مانند دیگران علیه او حکم جاری میکنم. ازت حضرت فرمود؟ در این صورت از جمله کفار خواهی بود زیرا شهادت خدا را درباره باره تارت فاطمه نادیده گرفته و به شهادت دو انسان جایزالخطا خطا ترتیب اثر داده ای؟ آیا از نظر تو فاطمه برای مال بیارزش دنیا مرتکب دروغ و قصب می شود؟ تو شهادت صدیق اتر را رد می کنی و شهادت یک مرد اعرابی که بر پاشنه پای خود بول می کند را قبول می کنی؟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 در وقت فوت پیامبر سر مبارک ایشان بر سینه من بود تا از دنیا رفت و من شاهد بودم که وضیعتی نکرد. انصاف دهید اگر وضیعتی در کار بوده قطعا ام المومنین آیشه از آن خبردار می بر آره. باره سند حدیث مدینه کم لطفی می کنید. این حدیث را اکثر علمای خودتان در کتابهای شناوردند. اما در مورد وصیت هیچ راهی غیر از پذیرش آن ندارید چون اسناد مربوط به آن مافوق تباتر است جناب آقا آیا وسیع غیر از خلیفه است خیر وسیع همان خلیفه است همان گونه که وسیع را پیامبر تعین می کند، خلیفه را هم نبی تعیین کند. این مسئله از نظر ما حل شده ولی این که از نظر شما چگونه است نمیدانم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 وصی موسی چه بود عرض کرد یوشع ابن نون فرمود وصی من وارث من ادا کننده بدهی های من و وفا کننده به وعده های من علی ابن ابی طالب است گمان می کنم همین دو حدیث برای اطمینان جناب شیخ کافی باشد. و اما احادیث بسیار معتبری مبنی بر اینکه در هنگام احتضار پیامبر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 اگر این اخبار صحیح هست، چرا هیچ اثری از نامه رسول خدا در کتاب ها نیست؟ در حالی که از خلیفه اول و دوم نامه هایی در کتاب ها وجود دارد، با وجود دستور سریح قرآن کریم به نوشتن نامه چرا رسول خدا در هنگام فوت وسیعت نکرد؟ جد بزرگوارم با وجود تأکیدی که برای نوشتن وسیعت میفرمود و مردن بدون وسیعت را مردن جاهلی میدانست؟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 سانین، این تنها من نیستم که به عمر اعتراض میکنم، بلکه علمای خودتان هم وقتی به این فراز از تاریخ میرسند، صدا به ناله و تأصف بلند میکنند. قاضی عیاز شافعی مینویسد گوینده این کلام هیچ ایمانی به رسول خدا نداشته و از معرفت کامل به مقام و مرتبه پیامبر بیبهره بوده.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 امکان سلب اسمت از او باشد پس برای هیچ یک از حرفهای او هم نمیتوان حسابی باز کرد چگونه میتوان به چنین پیغمبری معتقد بود آیا تصور میکنید که خدا یک پیامبر هزیانگو برای هدایت خلق میفرستد چرا این گونه قضاوت میکنید بالاخره وظیفه ما توجیه افعال بزرگان است چون خلیفه دوم مجتهد بوده و برای حفظ دین اشتهااد کرده پس هیچ اعتراضی بر او وارد نیست ولو اینکه در این اجتهادش دوچار اشتباه شده باشد هر عذری به تراشید عذر بدتر از گناه است اولا اجتهاد در مقابل نس باطل است زیرا نقض قرارداد است ثانیا آیا حبس دین بر عهده عمر بود یا بر عهده پیامبر آیا پیامبر مسمم به انجام کاری که بر خلاف مصالح دین است می شود و پسر خطاب برای اینکه مبادا دین از بین برود جریی رسول خدا را میگیرد؟ مالکم کیف تحکمون؟ شاید اوضاع مملکت به گونه بوده که خلیفه به دلیل وخامت اوضاع و برای جلوگیری از بروز فتنه این امر را انجام داده. جواب جناب آلی را قرآن می دهد.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 من دو چیز گرانبها در میان شما میگذارم که هیچگاه از هم جدا نمیشوند تا در کنار حوز کوسر بر من وارد چوند و آن دو چیز قرآن و اطرات من است اگر به این دو متمسک شوید نجات مییابید و هرگز گمراه نخواهید شد اگر کتاب خدا شما را بسه است پس با آیه فسلو اهل ذکره ان کنتم لا تعلمون چه میکنید زویوتی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 اینجا دیگر کتاب خدا بس نبود و امت احتیاج مبرمی به وصیت ابوبکر داشتند از کجا معلوم که موضوع وصیت پیامبر مربوط به امر خلافت بوده اولا بر فرض که موضوع وصیت مطلب غیر از خلافت بوده باز هم عمل زشت و ناپسندی عمر انجام داده ثانیا بر فرض که الیازب الله رسول خدا هزیان میگفته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 البته پیانبر اکرم به صورت شفاهی و زبانی وصایای خود را در خصوص امیر مؤمنان در موارد متعدد بیان داشت. لیکن چه خوب بود که خلفای شما مانع از وصیت کتبیان حضرت نمیشدند تا امت دچار سرگردانی و حیرت نشود. از تناقضهای رفتار مردم دنیا این است که ابوبکر عمر در مورد احکام دینی که خود از آن بی اطلاع بودند دست به دامان امیر مؤمنان میشدند. اما در مورد احکام خلافت و وسایت و تشکیس ماترک هرکه پیامبر تنها حرف علی علیه السلام را قبول نمیکردند، بلکه به ایشان توهین اعانت نیز میکردند. چرا نسبت بی اطلاعی از احکام دین را به خلفای راشدین میدهید؟ در تاریخ مشهور است که هرگاه امری بر عمر مشکل میشد، آن را از علی میپرسید اگر به تاریخ خلفا مراجعه کنید، موارد متعددی را میبینید که نشان از بیاطلاعی خلفا و مراجعه ایشان به امیر مؤمنان دارد. از بحث اصلی دور نیفتیم، خلاصه کلام ما این است که حدیث مورد استناد ابوبک برای قصد فدک از درجه اعتبار ساقت است و هیچ ارزشی ندارد، زیرا مخالف با اقل و نقل و حتی عمل خلفای راشدین است، منظورتان چیست؟ عمل کرده کدام یک از خلفای راشدین را میگویید؟ عمل کرده ابو و عمر در تاریخ زبط است که ابو از بابت سحمل زنان پیامبر به دختر خودش آیشه و به دختر عمر حفظه حجراتی را اختصاص داد. از این جالبتر اینکه که ابو پس از شنیدن استدلالات حضرت صدیقه طاهره دستور برگشت فدک را به صاحب آن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 شاید عمر ابن عبدالعزیز منظور نظر بوده <تصفيق> علی علیه السلام و عباس در زمان عمر ابن عبدالعزیز در قید حیات نبودند فدک نهله فاطمه بود قاصبانه از او گرفته شد و وقتی به مقاصد دنیوی خود رسیدند و بی‌نیاز از امسال فدک شدند آن را به ورثه آن حضرت برگرداندند اگر فدک نهله فاطمه بوده پس چرا او ادعای از کرد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 علمات در زیل این آیه نوشتند که منظور از صادقین همانا محمد و علی و اطرت نبی اکرم هستند. خداوند بزرگ مرتبه در سوره زمر میفرماید و لذی جا به صدق, صدق بهی اولایک همول متقون به شهادت علمای خودتان در این آیه نیز مراد از مصدق امیرالمؤمنین است. از ابن عباس روایت شده که رسول اکرم فرمود صدقین سه نفرند حبیب نجار و علی که علی از آن دو افضل است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 تا هیچ زمینهی برای اقبال مردم به آنان نباشد ابوبکر حق مسلم و قرآنی اهل بیت را هم به همین دلیل از آنها گرفت و به این بهانه که خمس مبلغ زیادی می شود و نمی توان همه را به زبل قربا اختصاص داد آنها را از حق شرعیشان معنه کرد آیا شما حق رای و نظر را برای مشتهد جایز نمی دانید؟ خلیفه عبوبک و عمر بر اساس اجتحاد چون کاری انجام دادن و هیچ اشکالی هم ندارد اجتهاد در مقابل نس عقلا جایز نیست معنی اجتهاد کوشش به منظور استخراج نظر خداوند متعال با استفاده از منابع دینی نیست. پس زمانی که بر طبق نس سریح قرآن نظر خداوند متعال به وضوح روشن می شود دیگر جایی برای اجتهاد باقی نمی مارد.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 زیبا نیست که انسان هر حرفی را از هر کسی بپذیرد مگر اینکه در مورد سوابق آن فرد تحقیق و بررسی کند این اتهامات به کسی که آیه تطهیر در شعن اوست و آیه مباهله در مدح اوست و در مدینه اله مست کسی که تاریخ زندگی امیرالمومنین را بداند و اهل اندیشه باشد می بفهمد که این احادیث تماما ساختگی و از جعلیات بنی امیه است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 نتیجه می شود که ابو بکر و عمر مغضوب پربردگار بودند و باز مجددا این نتیجه را در کنار آیه شریفه از نسراط المستقیم سرات اللذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم در نظر بگیرید خواهید یافت که سرات مستقیم غیر سرات مغضوبین است و سرات مستقیم غیر از سرات ابو عمر است. چرا که این دو جزء مغذوبین بودند. حضرت فاطمه بر ابو و عمر غضب کرد. ولی این خشم سریعا فروکش کرد. حضرت فاطمه نیز پس از فروکش کردن احساسات از ابو راضی شد. زیرا سکوت نشانه رضایت است. نشانه دیگر آن علی در دوری خلافت خود فدک را زبط نکرد.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 موجب سکوت مظلوم می شود و اما علت عدم تصرف فدک توسط امیرالمومنین در دوره خلافت نداشتن آزادی عمل بوده نه رضایتیشان از قصب فدک به چه دلیل میگویید علی کرم الله وجهه در عمل آزاد نبوده آن حضرت در دوره خلافت خود میخواست منبر رسول خدا را به جای اول آن برگرداند که با مخالفت مردم روبرو شد او مردم را از برگزاری نماز جماعت تراویح منع کرد اما مردم صدا را بلند کرده. او مردم را از برگزاری نماز جماعت کرد اما مردم صدا را کرده و فریاد میزدند علی میخواهد بر خلاف سنت عمر رفتار کند. نماز تراویح از جمله عدهایی بود که خلیفه عمر اختراع کرد و مردم نیز از آن استقبال کردند. دقیقا به همین علت گرفتن فدک نیز برای امیر مؤمنان مقدور نبود. پس سکوت ایشان از ناچاریش نه از رضایت. اما اینکه گفتید حضرت زهرا در اواخر عمر از ابو بکر و عمر راضی شد هم برخلاف احادیث قطعی خودتان است. ابن قطعبه و ابن ابی الهدید نقل می کنند. عمر به عبو بکر گفت بیا نزد فاطمه برویم چون که ما او را خشمگین کردیم.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 اگر پیامبر را ملاقات کنم از شما شکایت می کنم. از سخنان بیبی بی گریان شد و گفت به خدا پناه می از آزار پیامبر خدا. سپس فاطمه با ناله فرمود سوگند به پروردگار که در هر نمازی بر تو نفرین می کنم. با چشمان گریان بیرون رفت. مردم اطراف وی را گرفتند و به او دلداری می دادند. گفت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 و اهدی از اعراب را برای تشیی و نماز به من خبر نکنید. با این بیانات جناب واعظ حالتی پر از حزن و اندوه بر مجلس حاکم شد. جناب حافظ اشک میریخت و استغفار میکرد و از آن شب به بعد دیگر به میدان مناظره نیامد. سه ساعت بعد از نیمه شب و نزدیک از آن صبح، مجلس خاتمیم